وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَانِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد توحيد وزد توحيد شرك عندما تمسأل رموتو زهد توحيد شيئا الشرك شيئا نديم یکی از مسائلی که درباره توحید گفتیم و درباره باره شرکم همین که زد توحیده بحث یک تا قرار دادن خداوند بود در توحید علمی یک تا قرار دادن خداوند در روبیتش در خلقش در آفرینشش در رزق روزیش در ملکش در تدبیر امور در قدرتش در علمش در رحیم بودنش در رحمان بودنش در حلیم بودنش کل اصما صفات خداوند کل اون صفاتی که باری تعالی داره از صفت رزاقیت از صفت سمیع بودن میشنود میبیند رحمان هست اینها صفات خداوند باری تعالی هست که برمیگرده به توحید علمی یک تا قرار دادن خداوند در افعال خودش خدا را باید در این صفات یکتا قرار بدیم این خداوندی که این صفاتی دارد که هیچ مخلوق جز او این صفات رو ندارد هیچ کسی از مخلوقات چنین صفاتی که خداوند دارد رو ندارد. خداوند متفرده به این صفات هست همونطور که خودش میگید لی سکه مثل شی هی هیچ کس مثل خدا نیست خداوند قابل قیاس و بنده نیست خداوند هیچ نقصی در صفاتش نیست کمال رو داره بنده ناقصه بنده میبیند خداوند هم میبیند ولی که دیدن ما با دیدن خداوند قابل قیاس نیست بنده اگر میبیند به خودش رو میبیند در یک محدوده خاصی میبیند در یک حدود خاصی، در یک زاویه خاصی، ولی خداوند همه مخلوقات چه, روزی، چه ریزش، چه کوچکش؟ هر جا که باشند، در تاریکی و در اعماق دریا، چه در چاها، خداوند او را میبیند. مورچه ریز سیاه رنگ، من همیشه این حدیث دارم تکرار میکنم، بارها گفتم و دارمم میگم، خداوند مورچه ریز سیاه رنگ را میبیند، خداوند صداش را میشنود روی صخره سیاه در دره تاریک در شب تاریک او را میبیند هیچ کسی از دید خدا نمیتونه فرار بکنه نمیتونه خودشو پنهان بکنه هیچکس نمیتونه از خداوند باری تعالی فرار بکنه این صفات کماله هیچ نقصی درش نیست خداوند در قرآن در بزرگترین و عظیمترین ترین که ما در قرآن داریم از عزمت خداوند از عظمت خودش چنین بهمون یاد میکنه الله لا اله إلا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم الله کسی که حی قیوم است همیشه زنده است کسی جز خدا همیشه زنده نیست همه کس میمیرند هر کسی میمیرد ولی خداوند همیشه زنده هست. همیشه هیچ نقصی در این صفت نمیاد نه استراحت میکنه نه خداوند میخوابد صفات کمان رو دارد. الله لا اله الا هو الحي القيوم. فقط خداوند حی و خداوند خدا از که قیوم هست. که رزق روزی را میرسانه و امور رو تدبیر میکنه و میچرخانه. همه چیز به دست خداونده. هیچ وقت غافل نیست. هیچ وقت دریغ نمیکنه از این که صدای بنده را نشنوه یا نبینه. همه کس در همه جا میبیند و میشنبه. قیومه. چون آفریننده هست قیومه. تمامی امور به دست خداوند، به دست مخلوقی از مخلوقات نیست. هگر مخلوقی بخواهد، باید اراده خالق باشد تا اینکه بخواهد اون کار انجام بشه. بله، این صفات کماله. و بعد از اینکه تأکید بکنه خداوند، به اینکه خودش فقط حی و قیوم هست، همیشه زنده هست. بگیم لا تأخذه سنة ولا نوم. و بدونید در مقابل قیومیتش خداوند خسته نمیشه. و نمیخوابه. و چورت هم نمیزنه، نه تأخده سنتون ولنه، نه چورت میزنه، نه هم میخوابه. خداوند در مقابل کاری که انجام داده و میده، در مقابل رزق روزیش، ملک آفرینش و خلقتش، هیچ و خداوند خسته نمیشه. خسته نمیشه که صدای بنده این و اونور بشنوه. چه انسانش، چه اون مرشش. همه این مخلوقات، چه ماهی در دریا، خداوند همه را میبیند و صدای همه را میشنود. این خداوند باره تعالی هست که صفاتش صفات کماله و خداوند را باید در این صفاتش یکتا قرار بدهیم چون خداوند چنانچه در, در آیت الکرسی داریم در سوره البقره خداوند در نهایت آیت الکرسی چی می بیاد؟ و هو العلی العظیم بله خداوند علی و عظیم هست انسان نمیتونه از عظمت خداوند صحبت بکنه نمی تونه زبانش عاجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم می در سجدهاش در نماز شب که بیدار میشودن میگویند آمین اعوذ بر من صحتت و من من عقوبت و اعوذ بك منك لا احصی فنا ان عليك پس در چنانچه شایستی مکانت هست چنانچه جایگاهت درش هست من نمیتونم حق اون جایگاه را ادا بکنم چنان متفاوت بکنم چنان تعظیمت بکنم انسان نمیتونه از عظمت خداوند یاد بکنه عظمت خداوند قابل قیاس با نیست انسان نمیتونه از عظمت خداوند سخن بگه چرا؟ چون خداوند آفرنده کل این جهانه کل این مخلوقاته آفریننده کل خداوندی که انس و جن را آفرید خداوندی که تمامی مخلوقات از درخت و غیر و از ستارگان و سیاره ها آفرید خداوندی ای که این زمین را در آسمون میچرخونه و این خرشید را میچرخونه ملائکه را خلقت کرد ملائکه ای که فرمان ازش ببرند بالا و پایین بیاد اعمال ما را بنویسند و دیگر چیزهایی که خداوند خلقت کرد عظمت خداوند قابل قیاس نیست بله خداوند به خاطر اینکه از عظمت خودش را بهمون بگه میگوید و ما قدر الله حق قدره بندگان نتونستن قدر خداوند عظمت خداوند چنان چه شایسته اش را به جا بیارن هیچ بنده ای نمیتونه اون چنان چه خداوند لایق شایسته مکانتش هست اونچنان متوسلاییشش بکنه حقش رو بکنه و بگه اون که بعد از اون میگوید تمام آسمون ها و زمین در کف دست خداوند باره تعالی هست تمام مخلوقات چطور الله اعلم این همه مخلوقات را میبینیم در مقابل خداوند در کف دستش یعنی خورشیدی که میلیون بار از زمین بزرگتره. هر نقطه ای که در آسمان ما میبینیم، هر نقطه ای شاید میلیون بار میلیارد بار از این کهکشان خودمون بزرگتر باشن. همه اینها در کف دست خداوند باری تعالی هستند. چیزی به حساب نمیان. چیزی در مقابل عظمتش به حساب نمیان؟ بله خداوند خیلی عظیمه. رسول الله صلی الله عليه و سلم به معرج می از آسمانی به آسمان دیگر. براق می آید به سراغ رسول الله در مکه میروند به بیت المقدس بعد از اونجا میروند به آسمون ها همراه جبرئیل تا اینکه به آسمان هفتم میرسد اونجا جبرئیل میگوید من دیگه بالاتر از این نمیتونم بیام رسول الله صلی الله علیه و سلام میرغان به جایی که جبرئیل نمیتونه بیاد میرود اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلام می است و پروردگار پروردگار یکتا اونجا سخن میگوید اونجا می ایستد بعد از اون خداوند نماز را برش فرض میکنه و برمیگرده به زمین اونجا رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که به تنهایی نشست و با خداوند اونجا صحبت کرد صحابه فرمودن گفتند به رسول الله صلی الله علیه وسلم ای رسول خدا تو که اونجا رفتی پروردگار را دیدی پرسیدن از رسول الله صلی الله علیه وسلم پروردگار را دیدی رسول الله صلی الله علیه و سلام چنین فرمودند چنانچه در صحیح مسلم داریم حدیث حدیث ضعیفی نیست حدیث صحیح مسلم هم اتفاق دارند در صحت این حدیثی که در صحیح مسلمه کسی شک در صحتش نداره رسول الله صلی الله علیه و فرمودند حجاب او نور حجابی که بین من و پروردگار بود از نور بود لو اشرقت صبحات وجهه لا احرقت مد لا مد بصره من خلقه حجابی از نور بود بین من و پروردگار اگر یک پرتوب نور صورت خداوند وجه پروردگار از اون حجاب و از اون پرده عبور بکنه تا جایی که چشم خالق کار میکنه چشم پروردگار کار میکنه تمامی مخلوقات آتش خواهند گرفت. مخلوقات در این دنیا تحمل پرت، یک پرتوب نور خداون رو ندارن یک پرتوب نور صورتش رو ندارن چه عظمتی هست، چه بزرگی هست قابل نیست بله در روز قیامت بزرگترین نعمت دیدن پروردگار اونم فقط برای مؤمنان اونجا خدا این قدرت را به میده که اون را ببینیم و رسولان صلی الله علیه وسلم از خدا میخواستن اللهم متعنی به نظره اله واجی کل کریم بزرگتری خوشیر و بهم بده به همون بده و اونم نگاه به چهره ولی که در این دنیا اگر یک نور از چهره خداوند یک نور یک پرتو از چهره خداوند از نور از چهرهش از اون پرده عبور بکنه پرده ای که بین مخلوقات هست و بین خداوند یکتا تمامی مخلوقات آتش را گرفت چه عظمتی چه بزرگی است قابل قیاس نیست با بندگان این خداوند حی و قیوم این خداوند عظیمه که فقط او را با صدا بزنیم و فقط او را باید در این صفات یکتا قرار بدیم و کسی را شریک در این صفات به خداوند قرار ندیم بله خداوندمون وقتی بوده کسی جز او نبوده و بعد از خداوند هیچ کسی نیست هو الاول و الاخر خداوند اوله کسی جز خداوند نبوده که مخلوقات را بیافرینه خداوند آفریننده هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم می کان الله و لم یکن قبله شی خداوند بود و کسی جز خداوند کسی دیگه نبود شاید ابلیس و شیطان بیاد در ذهن ما وسوسه بکنه که پس قبل از خدا کی بوده خداوند به خاطری که این شبه را برطرف بکنه میگوید هو اول خدا اولی بوده دیگه شک نکن پیامبر را فرستادم ادله را برای فرستادم براهین حجتها مدارکی به زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم دادم که بهتون بگه و رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون معجزات و از اون آیات و نشانه ها بهتون گفت دیگه شکی در من نداشته باشید صحابه هم اومدن این وسوسه شیطانی رو گفتن یا رسول الله این اینجوری وسوسه میکنه این کف چیزای کفر در ذهن ما میاد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن. بگید ما به الله ایمان آوردیم به الله ایمان آوردیم بگید بگید ایمان رو وردیم به الله یکتا. بله خداوند اوله و خداوند آخره خداوند اگر بخواد چیزی آخر ببونه میمونه ولی در غیر این صورت یک مال خداوند خودش هست هو الاول والآخر. و الاخر و خداوندم میگوید اینهو یا جاهایی که در قرآن زیاده سخم میگه استفادش از جمله از اون آیات این ربک علیم حکیم استفاد پروردگارت پروردگارت علیم هست و حکیم هست. ما باید بدونیم که از علم غیب جز خداوند هیچ کس با خبر نیست. هیچ کس نمیدونه در آینده چی میشه. یعجوج و معجوج کی میان. در کی دجال میاد. کی ایسا میاد به زمین و کی چیزهای دیگر رو خواهد داد. هیچ کس نمیدونه از این علم جز خداوند یکتا گفتیم اگر صاحری بداند استراق سم بکنه از توسط جنیان بداند. از اون چیزی گذشته هست یا اون چیزی که الان رخ میده ولی از آینده اگر بخواد چیزی به همون بگه توسط ساحر و جادوگر چیزی به همون خبر بده یک درصد دو درصده که با بقیش همش دروغه که به همون دروغ میگن تا این که ما دوچار شرک بشیم در صفت علم خداوندی که میگوید فقط من علیمم علم, علم بینخص را فقط من دارم ما میام به خداوند در علم شریق قرار بدیم اون مخلوق را شریک خدا قرار میدیم و میام باورش میکنیم که در این که علم غیب داره هیچ کسی با اعتقاد داشته باشیم جز خداوند از غیب باخبر نیست اون کسی که استراق سمع میکنه بعد از اینکه از غیب خارج شده و خداوند میگوید به ملائکه که برید فلان کار را انجام بدید از اونجا به بعد میدونن در غیر این صورت هیچ کس نمیدونه که در آینده چه میشه هیچ کس نمیتونه بفهمه دو سال دیگه سه سال دیگه چه واقعی رخ خواهد داد. بله جز خداوند کسی دیگر نمیداند و خداوند است که دانسته و وحی کرده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ما خیلی از اون چیزهایی که بوده برامون نقش شده که رخ داده و خداوند خبر داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده از آتش که در مکه فبرام میکنه و شد و در تاریخ نقش شد، خبر دادن به دروگانی که خواهند اومد و اومدن و دیگر اخباری که رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کردن و گفتن از وحی و ماها هم میبینیم و دیدیم و میشنویم. خداوند در علمش یکتاست، خداوند در محکمی کارش یکتاست. خداوند نقصی در کارش نمیاد. این ربک علیم حکیم، پروردگارت علیمه، کارش با علم نقصی در علمش نیست و نقصی در محکمیش نیست. هیچ خلقی ناقص نیست. مخلوقات خداوند طوری دقیق خلقتشون کرده که هیچ نقصی درش نیست بله، شاید بندگان یک مشکلی، یک خللی در خلقشون ایجاد بشه، اونم به خاطر یا کارهای شیمیایی، مواد شیمیایی یا مش مشکل ژنتیکی که پیش میاد در اثر غذا در اثر دارو و چیزهای دیگه شاید رخ بده، ولی که اصل مخلوقات سالم و پاکن. رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایان ما من مولودا الا یولد علی الفطره مولودی نیست کسی نیست که به دنیا بیاد مگر بر فطرت مگر هم سرشتش باکه و هم خلقتش باکه كما تنتج البهيمه بهیمه جمعاء هل ترى فیها من جدعه هم ترکی حیوان میبینی حیوان سالمی دو به دنیا میاره حیونی از اون حیوانات گوشبریدنی نیست بینیش بریدنی نیست خلقتش کامله مگر گفتم اینکه بشریت بیان نقصی در اون خلقت ایجاد بکنن بله ماها سالمیم و خداوند درست ما را خلقت کرد آفرینشش محکمه زمین یک ثانیه عقب و جلو نمیره 24 ساعت با تمام اون دقایق و ساعتها 24 ساعت و هر ساعتی 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه باید بره تا اینکه که روز دیگر بیاد در غیر این صورت روز دیگر نخواهد اومد سالم همینطور چه سال شمسیش و چه سال قمریش خورشید زمین دور خورشید در زمان معینی میچرخه و ما هم دور زمینم هم همینطور در زمان محددی در زمان دقیقی اون مسیرشو تیم میکنه کسی نمیتونه این, این مخلوق رو از مسیرش خارج بکنه کار خدا محکمه ایمان داشته باشیم کار خدا محکمه و خداوند کارش عالمانه هست هیچ نقصی در حلقتش در آفرینشش نمیاد و خداوندم هر گاه که بخواد کاری انجام بده میتونه انجام بده. شما باید این اعتقاد داشته باشید. ای مؤمن ای مسلمان بدان خداوند فعال لما یورید هست. فعاله یعنی هر گاه که بخواهد هر کاری که دوست داشته باشه میتونه انجام بده. ای بنده به خدا داشته باشد. خداوندی که علیمه خداوندی که حکیمه کارش اینچینین محکم بوده و خداوندی که میگوید ادعونی از سجب لکم دعا بکنین من استجابت میکنم بدونید که خداوند یقینا استجابت میکنه و هر بخواهد میتوند سردن بشتون عوض بکنه و هیچ چیزی جز دعا قذا و قدر را رد نمیکنه همونطور که در حدیث داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن بعضی ها شاید بگن ما خیلی چیزها را از خدا خواستیم ولی بهمون به نداد نباید این وسوسه شیطانی سبب بشه که ما سوء زن به خداوند داشته باشیم ما باید به خداوند زن و گمان نیکی داشته باشیم اگر نبوده به مصلحت ما خودمون بوده خاصه خدا بوده ولی اینکه نشه رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند انسان دعا میکنه شاید دعاش سجابت بشه و شایدم هم خداوند شرری رو از سرش کم بکنه به ضررش باشه من از خدا ماشین میخوام شاید خدا بهم به ماشین داد رفتم سر چهارراه تصادف کردم مردم الا بهتر بهم به بده یا نده بهتره که نده شاید از خدا خواستم مال بهم به بده مغرور شدم در این دنیا خدا اجر این دعا را در آخرت بهم به میده خدا, خدا که عالم غیبه از آینده من با خبره و میدونه به من هست یا نیست بله خداون علامه علام و غیوب هست از آینده با خبره و اصفاتش رحمان و رحیمه لطف داره حق ما اگر ما خدا اگر خدا مثلا بالفرض ما اگر خدا خاصی ماشیم بهمون بده نابود بشیم از دنیا بریم توفیق عمل صالح را پیدا نکنیم خداوند رحم به حال ما نکرده خداوند از رحمش اینه که دعامون اونجا استجابت نشه. ما باید ارتقاط داشته باشیم. خداوند رحمان رحیمه و فعال لما یورید هست و خداوند بر هر کاری قادر هست. ان الله على كل شيء قدیر خداوند بر هر کاری قادر هست. بله؟ و خداوندم رحمتش همه جا فرا گرفته و رحمتی وسعت کلشی خداون خداوند بید ما باید اعتقاد داشته باشیم خدا رحمانه خدا رحمت, رح رحمت داره به نسبت ماها لطف داره به نسبت ماها و, و اون چیزی که به مصلحت ما هست استجابت میکنه. هیچ هیچ ای مثل خداوند لطف نداره رسول الله صلی الله علیه رو به مادری می کنه این مادر می بینید بچه شو در جهنم در آتش میندازه؟ گفتن نه گفتن خداوندم از این بالاتر خداوندم قابل قیاس با این بنده نیست با این مادر نیست الله اکبر رحم مادر لطف مادر مهربانی مادر ولی قابل قیاس با رحمت خدا و مهربانی خدا نیست خدا هم دوست داره ما بسوزیم پیامبران را فرستاد که ما را نجات بدن از جهنمش بل این رحمت که همه را فرا گرفته و این رحمت که ما میبینیم بچه از شکر مادر بیرون میاد بری خداوند از رحمتش مکیدن رو بهش یاد داده می مکه خدا هدایتش کرده به اینکه شیر رو بمکه و بنوشه خداوند بهش یاد داده چونگونه چهار دست راه بره بزرگ بشه بیبینه چشمش باز بکنه قضای حاجتش رو انجام این همه رحمت خداونده که ما باید در نفس خودمون ببینیم و در که گوشه و کنار خودمون ببینیم این از لطف خدا و رحمت خدا هست که همه جا فرار گرفته بله خطام بحثمون در اینی که هیچ مخلوقی با خداوند قابل قیاس نیست لیسا ک مثل شی و هو السمیع البصیر لیسا ک شی هیچ مخلوقی مثل خدا نیست هیچ کس نمیتونه مثل خالق باشه در صفاتش در اون افعالش خدا رو باید یکتا قرار بدید ای بندگان و هو السمیع البصیر خداوند میشنود و میبیند و هیچ نقصیم در صفاتش نیست واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلی الله علی محمد و علی ال محمد